ابرهای سیروس بر فراز ابرهای بلند کومولوس در اوج آسمان بودند و پیرمرد میدانست که بعد تمام شب خواهد وزید. پیرمرد مدام به ماهی مینگری است تا واقعیتش را باور کند و این نیم ساعت قبل از حمله نخستین کوسه بود. وجود کوسه اثر تصادف نبود. همین که ابر تیره خون ماهی به اعماق آب رسیده بود و در قعر 500 متری اقیانوس پخ شده بود کوسه خبردار شده بود و خود را به بالا رسنده بود چونان سریع و چنان بی بالا آمده بود که سطح آبی آب را شکافته بود و زیر نور خورشید پیدا شده بود بعد دوباره در آب فرو رفته بود و رد بورا گرفته بود و در مسیر قایق و ماهی افتاده بود گاه رد بورا گم می کرد اما از نوع باز میافت یا نشانی از آن سراغ میکرد و تند و تیز در مسیر بوشنا میکرد کوسه از نوع کوسه های بزرگ ماکو و سریع ترین ماهی اقیانوس بود و جز دهان همه جوه بدنش زیبا بود آبی پشتش هم رنگ نیز ماهی بود و شکمش نقرفان بود و پوستش نرم و صاف و زیبا بود همه بدنش به شمشیر ماهی شبیه بود مگر فکهای بزرگش که اکنون محکم بسته بود و نزدیک به صف و شنا می کرد و دوباله پشتش شق و صاف بود و چون تیری کارد آب را می شکفت. هر هشت ردیف دندانش درون لبهای دوگانه فکهایش به سوی داخل دهان برگشته بودند و شباهتی به دندانهای معمولی و هرمی شکل اکثر کوسه ها نداشتند و بیشتر شبیه انگشتان دست مردی بودند که چون چنگال پرنده خشک شده باشد. در واقع به اندازه انگشتان دست پیرمرد بود و از دو طرف چون تیغ تیز و برنده بود. کوسه از نوع ماهیانی بود که از ماهیان دیگر تغذیه می کنند و از این رو چونان سریع و قوی و مسلحند که هیچ دشمنی در دریا نمیشناسند. و که بورات تازه تر می بر سرعتش افزوده بود و بالی آبی پشتش آب را می شکافت پیره کوسه را که دید دریافت که این کوسه است که هیچ پروایش نیست و هرچه بخواهد می کند را آماده کرد و همچنان که چشمش به کوسه بود تناب را به آن گره زد تناب کوتاه شده بود چرا که پیرمرد برای کشیدن ماهی مقداری از آن را بریده بود اکنون حواسش جهن و عزمش جزم بود اما امیدوار نبود فکر کرد خوبتر از اون بود که موندنی باشه و همچنان که نزدیک شدن کوسه را میپایید نگاه دیگری به ماهی بزرگ انداخت فکر کرد نمیتونم جلوی زربش رو بگیرم برای شاید بتونم گیرش بندازم آی کوسه به سرعت به پشت قایق نزدیک می و وقتی به ماهی زر زد پیرمرد دهان باز و چشمان عجیبش را دید و صدای قرچ دندانهایش را شنید که درست بالاتر از دم ماهی در گوشت فرو می رفت. سر کوسه از آب بیرون بود و پشتش هم داشت بیرون می آمد. و پیرمرد همچنان که نیزه را به محل تقاطع خط بین دو چشم کوسه و خطی که از بینیش مستقیم تا روی پشتش کشیده بود فرود میآورد، صدای دریده شدن پوست و گوشت بزرگ ماهی را میشنید. این خطوط وجود خارجی نداشتند و تنها سر آبی سنگین و تیز کوسه و چشمان بزرگش وجود داشت و صدای تقتق و فرو رفتن و سوراخ کردن و بلعیدن مدام فک ها وجود داشت اما مغز درست همون جا بود و پیرمرد مرد همون جا زد با دستان آغشته به خونش که نیزه را با همه نیرویش میکشید نامید اما با عزم جزم و از نهایت کین زد کوسه به پشت قلطید و پیرمرد مرد چشمانش را دید که دیگر زنده نبود و بعد باز غلطید و بدنش در دو حلقه تناب پیچید پیرمرد میدانست که کوسه مرده است اما کوسه این را نمیپذیرفت. بعد همچنان که به پشت خوابیده بود و با دومش بر آب میکوبید و فکهایش تختخت می کرد آب را چون قایقی تند رو شکافت جای ضربه دومش آب را سفید می و وقتی تناب سفت شد و لرزید و کشیده شد سه چهار روم بدن کوسه از آب بیرون بود کوسه مدتی کوتاه بر سطح آب آرام گرفت و پیرمرد تماشایش کرد بعد آهسته آهسته در آب فرو رفت پیرمرد بلند گفت نزدیک بیس کلو شو برد و فکر کرد نیزه با همه تنابار هم برد و حالا باز از ماهی من خون میره و سر کله بقیهشون پیدا میشه از وقتی بادن ماهی مسله شده بود، پیرمرد نمیخواست نگاهش کند. وقتی به ماهی زرب خورده بود، حس کرده بود به تن خودش خورده است. فکر کرد. اما من اون ای رو که به ماهیم زرب زد کشتم. اون بزرگترین دنتو سویی بود که تا با حال دیدم. خدا شاهده که تا با گوسه بزرگ خیلی دیدم. فکر کرد. تر از اون بود که موندنی باشه. کاشم این یه خواب بود و هیچ وقت ماهی رو نگرفته بودم و الان توی رخت خوابم بودم و داشتم روزنمه میخوندم با خود گفت ولی انسان برای شکست آفریده نشده انسان ممکنه نابود بشه اما شکست نمیخوره و فکر کرد. با این همه از کشتن ماهی پشیمونم دیگه داریم به بدترین جاش میرسیم و من حتی نیزه هم ندارم. دنتوس و شرور و توانا و قوی و باقوشه. ولی من از اون باهوشتر بودم. شایدم نه. شاید فقط از اون مجهستر بودم. بلند گفت. انقدر فکر نکن پیرمرد مرد. راه تو بگیر و برو به موقع باش روبرو شو. فکرش کرد. اما من باید فکر کنم. چون این تنها چیزی که واسه مونده. فکر کردن و بیسبال. نمیدونم دیماجیوی بزرگ چقدر کوبیدن اما بر فرق کوسه میپسندید. فکر کرد. همچون کار بزرگی نبود. از هر کسی برمیومد ولی یعنی درد دستام به پای درد سیخک پاشنه پا میرسید. نمیتونم تصورشو بکنم میجویق پاشنه پام ناراحتی نداشته جز همون یه بار که موقع شنا پامو گذاشتم روی خارماهی و نیشم زد و ساق پام فلج شد اوه اون دردی غیر قابل تحمل بود گفت به چیز بهتری فکر کم مرد لحظه به لحظه به نزدیکتر میشی و با از دست دادن اون بیس کیلو سبکتر شدی خوب میدانست که با رسیدن به قسمت درونی جریان چه خواهد شد اما فعلا کاری از دستش بر نمی‌آمد بلند گفت چرا یک کار برمیاد میتونم چاغومو به دست یکی از پاروها ببندم همچونکه اهرم سکان زیر بغلش و پرده بادبان زیر پایش بود چاغو را به پارو بست گفت حالا هنوز هم یه پیرمردم اما بیصلاح نیستم. اکنون نسیم خونک و تازه بود و قایق خوب پیش می پیرمرد فقط به قسمت جلوی ماهی نگاه می کرد و کمی از امید رفتهش بازگشته بود. فکر کرد. نامیدی حماقته. ولو به. از نظر من گناهه. و فکر کرد. به گناه فکر نکن. هنوز فکر خیلی چیزا رو باید بکنی تا نوبت گناه برسه. تازه شم. من هیچ ازش سردر نمیارم. هیچ ازش سردر نمیارم و گمونم نکنم که بهش اعتقاد داشته باشم. شاید کشتن ماهی گناه بود. بگمونم گناه بود. حتی اگه برای این کشته باشمش که خودم زنده بمونم و شکم عده دیگر رو سیر کنه. ولی بله خب، و این حساب هر کاری گناهه. به گناه فکر نکن. حالا دیگه برای این کار خیلی دیره. علاوه هستن کسانی که واسه این کار مزد میگیرن. بذار هم اونا بهش فکر کن. تو ماهیگیر خلق شدی. همونطور که ماهی ماهیم ماهی خلق شده. سنپدر هم مثل پدر دیماجیوی بزرگ ماهیگیر بود. اما دوست داشت به همه مسائلی که درگیرشان بود فکر کند و چون نه چیزی برای خواندن داشت و نه رادیو داشت زیاد فکر میکرد و دنبالی افکارش را درباره گناه گرفت فکر کرد تو ماهی رو فقط واسه زنده موندن خودتو و فروختن به مردم نکشتی پیرمرد اونو واس خاطر غرورت و به خاطر اینکه ماهیگیر هستی کشتی اونو وقتی زنده بود دوست داشتی و وقتی هم مرد دوست داشتی. خب، اگه دوستش داری، پس کشتنش گناه نیست. یا شایدم گناهش سنگین تره. بلند گفت، تو داری زیادی فکر میکنی؟ فکر کرد، ولی تو از کشتن دنتسو لذت بردی، اونم مثل تو زندگیش از مایای زنده میگذرونه، نه لاشخوره، نه مثل بعضی کوسای مهده مترک. زیبا و نجیبه و از هیچی نمیترسه. پیرمرد بلند گفت، من اونو برای دفاع خودم کشتم و خوبم کشتمش. و فکر کرد، تازه، هر چیزی یه جوری چیزی دیگه میکشه. ماهی گیری هم منو میکشه. درست هم اونطور که زنده نگه میداره. و فکر کرد. اما پسرک منو زنده نگه میداره. نباید زیاد خودم و گول بزنم. به پهلوخم خم شد و تکه از گوشت ماهی را که کوسه دریده بود جدا کرد و جوید و کیفیت و تعم خوشش را سنجید. مثل گوشت قرمز سفت و آبدار بود. اما قرمز نبود. رگ و لیشه هم نداشت و پیرمرد میدانست که قیمتش در بازار از همه ماهی ها بیشتر است. اما هیچ راهی برای بیرون کشیدن بویش از آب نداشت و میدانست که اوقات بسیار سختی در پیش دارد. نسیم یک نواخت می‌وزید و جهتش کمی رو شمال شرقی برگشته بود. و پیرمرد میدانست که معنیش آن است که نسیم بند نخواهد آمد. پیرمرد به روبرو رو نگریست. اما نه بادبان قایقی، نه صدا و دود کشتی به چشم می‌خورد. تنها توده‌های زرد علف دریایی و ماهی پرنده‌ها بودند که از جلوی قایق و اطراف میجهیدند. حتی پرنده‌ای هم دیده نمی‌شد. دو ساعت بود که میراند و در انتهای قایق استراحت می کرد و گاه تکی از گوشت نیزه ماهی را می جوید و می آرام باشد که یکی از دو کوسه را دید بلند گفت ای وای هیچ معادلی برای این صدا می یافت یافت و شاید همان صدایی باشد که به هنگام گذشتن میخ از دست انسان و فرو رفتنش به چوب بی اختیار از گلو برمی بلند گفت: گالانوها! حالا باله دوم را هم دیده بود که از پشت اولین باله پدیدار میشد و کوسه های بینی را از روی باله سبوش قهوه رنگ و حرکات جارووار دمشان شناخته بود. کوسه ها بورا شنیده بودند و به هیجان آمده بودند و به خاطر حماقتی که از آن همه شکم گریبانگیرشان گیرشان شده بود. و از حرسی که داشتند گاه رد بو را گم و گاه پیدا می کردند. با این همه نزدیک و نزدیکتر می شدند پیرمرد تناب بادبان را محکم کرد و دسته سبحان را فشد بعد پارو را که چاغو گان بسته بود برداشت بالا برد پارو را با ملایمت تمام بالا برد چه دستانش از درد آسی شده بودند بعد دستها را به ملایمت باز کرد و بست تا نرمتر شوند بعد محکم بستشان تا شاید درد را تحمل کنند و به خود نپیچند و به تماشای کوسه ها پرداخت که می آمدند حالا می توانست سرهای مسطح عریض تهبیلی و باله های پشتی عریض نوک سفیدشان را ببیند اینها کوسه های چندشاور و بدبو و مردخور و جانی بودند و به وقت گرسنگی پارو یا سکان قایق را هم گاز می‌زدند. همین کوسه ها بودند که پاها و باله های لاک پشت را موقعی که روی آب خفته بودند قطع می کردند. و اگر گرسنه بودند به انسان هم بیان که بود خون ماهی و زخم ماهی بدهد زرب میزدند. پیرمرد گفت های گالانو بیایید گالانو آمدند اما نه که ماکو آمده بود یکیشان دور زد و زیر قایق از نظر پنهان شد و وقتی ماهی را تکان میداد و می پیرمرد تکان قایق را حس کرد کوسه دیگر از شکاف تنگ چشمان زردش پیرمرد را می و بعد با نین دایره فک بازش به سرعت جلو آمد تا به همان جایی که کوسه قبلی گاز زده بود بزند و سر قهوهی رنگش خط مشخصی تا پشتش آنجا که نبزش به ستون محرها و اصل میشد کشیده بود و پیرمرد چاغو را با پارو به محل تقاطع این خط فرو کرد و بیرون کشید و دوباره به چشمان گربهی زرد کوسه فرو کرد کوسه دست از ماهی برداشت و به درون آب لغزید و همچنان که میمرد هر هرچه برده بود می قایق هنوز از لطمه هایی که کوسه دیگر به ماهی میزد تکان میخورد و پیرمرد بادبان را رها کرد تا یک طرف قایق کاملا از آب بیرون آمد و کوسه از زیر آن پیدا شد. وقتی کوسه را دید روی دیواره های قای خم شد و کارد را حواش داد. اما کارد به گوشت خورد و پوست کوسه سخت بود و چاقوب به سختی در آن فرو میرفت. از شدت ضربه نه فقط دست ها شانه هایش هم درد گرفته بودند اما کوسه که سرش را از آب بیرون گرفته بود به سرعت بالا آمد و همچنان که بینیش از آب بیرون می‌آمد و روبروی ماهی قرار می‌گرفت پیرمرد درست به وسط فرق تهی‌بینی‌اش نشانه رفت و باز تیغه کار را بیرون کشید و درست به همان نقطه ضرب زد کوسه هنوز با فک‌های قف شدهش به ماهی آویخته بود و پیرمرد کارد را به چشم چپش فرو کرد کوسه هنوز به ماهی آویخته بود پیرمرد گفت از رو نمیری؟ و چاهو را بین ستون محرها و مغز کوسه فرو کرد این دیگر ضربه آسان بود و پیرمرد سفتی قضروف ها را حس کرد پارو را پشت رو کرد و تیغه کارد را بین فکهای کوسه گذاشت تا از هم بازش کند. تیغه را پیچاند و همچنان که کوسه لخت و شل به درون آب میلغزید گفت و یه فرسخ برو پایین برو رفیق تو ببین به شاید نه بود پیرمرد مرد را پاک کرد و پارو را زمین گذاشت بعد تناب بادبان را پیدا کرد و بادبان را برفراشت و قایق را به مسیرش انداخت بلند گفت بعد یه چار برده باشم از بهترین جاهاش کاش همه اینا یه خواب بود و وقت نگرفته بودمش ماهی واقعا متاسفم همه چیز غلط از آب در اومد ساکت شد و دیگر نمیخواست به ماهی نگاه کند ماهی خونالود و شناور بر آب هم رنگ ای بود که پشت آینه میدهند و نوارهایش هنوز پیدا بود گفت ماهی، نباید این همه دور می رفتم، همه خاطر تو، همه خاطر خودم، اتصرفم ماهی. به خود گفت. حالا به تصمه های دور کاردت نگاه کن و به بریده یا نه، بعدم به دستات برس، چون هنوز قرار سر برسن. بعد از اینکه که تصمه های دور دسته پارو را ماین کرد گفت. کاش سنگ چاقو تیز کنی داشتم، اخ، باید سنگ با خودم میآوردم و فکر کرد، خیلی چیزا با خودت میآوردی که نیاوردی حالا دیگه وقتش نیست به چیزایی که نداری فکر کنی پیرمرد مرد، فکر کن با چیزایی که داری چی کار میتونه بکنی، بلند گفت، زیادی نصیحتم میکنی، وصولم و سر میبری، دسته سکان را زیر بازویش گذاشت و همچون که قایق پیش میرفت هر دو دستش درون آب بود. خدا میدونه که اون آخری آخرین ازش برد ولی حالا قایق خیلی سبکتر شده نمیخواست به شکم مسله شده ماهی فکر کند میدانست که هر یک از تکان‌های شدید کوسه به معنی بریدن تکه از گوشت ماهی بود و حالا ماهی در دریا رد پای به وسعت یک شاهراه برای کوسه ها باقی می گذاشت فکر کرد این ماهی بود که میتونست تمام زم سون یه آدم و تأمین کنه اوف، بهش فکر نکن فقط استراحت کن و سعی کن دستات خوب بشن تا لاقل از اون چی که باقی مونده دفاع کنی بوی خونی که از دستای من جاری شده در مقابل همه اون بویی که توی آب پر شده هیچه تازه خون چندانیام ازشون نمیره خونریزی جلوی گرفتن دست چپ هم و میگیره فکر کرد حالا به چی فکر کنم به چی باید به هیچ چیز فکر نکنم و منتظر کوسه بعدی باشم و فکر کرد کاش این واقعا یه خواب بود ولی از کجا معلومه جا خوب بود کوسه بعدی یک کوسه تنهای بینی بیلی بود آمدنش چون خوکی بود که به آبش خور می رود. البته اگر دهان خوک چونان گشاد باشد که تمام سر آدم را توی خودش جا بدهد پیرمرد گذاشت که کوسه به ماهی ضربه بزند و بعد چاقویش را که به پارو بسته بود به مغزش حواله داد اما کوسه همچنان که می به شدت به عقب جهید و تیغه چاهو را با خود برد پیرمارد به راندن قایق پرداخت حتی به کوسه بزرگ که آرام در آب فرو می رفت و ابتدا بدن خود را در اندازهی معمولی نشان می داد، بعد کوچک می شد، بعد به ذره تبدیل می شد نگاه نمی کرد منظری که همیشه به شگفتش آورده بود اما حالا حتی نگاهش نمی کرد. بلند گفت هنوز چنگک برا مونده. اما به درده خوره. دو دوتا پارو و دسته سکانو یه چوب دسته کوتاهم دارم. فکر کرد. حالا دیگه شکستم دادن. دیگه پیرتر از اونم که کوسه ای رو با زدن بکشم. ولی تا وقتی پاروها و چوب دستی کوتاه و دسته سکانو دارن میزنمشون. دستهایش را دوباره در آب گذاشت تا خیس بخورند. دمدمه های غروب بود و جز آسمان و دریا چیزی را نمی دید. باد در آسمان بیشتر شده بود و امیدوار بود که بزگودی خشکی را ببیند.